فصل پونزده همچین خوب نخوابیدم نزدیک ساعت ده بیدار شدم با کشیدن اولین سیگار گرسنم شد آخرین غذایی که زده بودم همون دوتا همبرگری بود که موقع سینما رفتم با بروسارد و اکلی خوردم صحبت یه قرم پیشه تلفن کنار دستم بود اومدم زنگ بزنم پایین برام صبونه بیارم، ولی ترسیدم بدم موریس بیاره اگر خیال میکنی کشت مردهی دیدنش بودم پاک خول شدی خاطر همین رو تخت دراز کشیدم و یه سیگار دیگه روشن کردم با خودم فکر کردم به جین زنگ بزنم ببینم رسیده خونه یا نه ولی حسش نبود گفتم عوضش زنگ میزنم سالیه اون میره مدرسه ماری ای روف میدونستم خونه است چون دو هفته پیش ازش نامه داشتم همچین خیلی ازش خوشم نمیومد ولی سالها بود میشناختمش در کمال مشنگیم خیال میکردم خانم نابغه است دلیلش این بود که از تاعتر و نمایشنامه و ادبیات و این حرف رو خیلی سردر میآورد خب اگه کسی از این جور چیزا سر در بیاره خیلی طول نمی کشه تا آدم بفهمه چیزی بارشی یا نه در مورد بند خدا سالی یه چند سالی طول کشید تا فهمیدم اونم اگه اینقدر بهش نزدیک نمیشدم زودتر میفهمیدم. این مشکل حساسی منه که خیال میکنم هرکی نزدیک میشم، لزوما آدم باهوشیه من هیچ ربطی به طرف نداره ولی مدام اینطوری فکر میکنم ولش کن بهش زنگ زدم اول از همه مستخدمشون جواب داد بعد گوشی رو داد دست باباش بعد رسید به خودش سالی؟ بله بفرمایین به این میگن جهل ریز من به باباش گفته بودم کیم ولی بزطوری رفتار افتار میکرد که انگار مثلا نمیدونه کی پشت خطه اه هولدن کالفیدم خوبی تو؟ هولدن خوبم چطوری تو؟ خوب توپ ببین امروز کاری نداری؟ یک شنبه است ولی یکی دوتا فیلم پخش میشه از همینه که واسه خیری و اینا میذارن دوست داری بریم؟ آره که دوست دارم خیلی هم خوبه خیلی هم خوبه وای از این جمله حالم به هم میخوره جهل مطلقه همون لحظه به سرم زد بیخیال فیلم میل موین داستانو بشم اما یهو شروع کردیم حرف از این اون زدن، یعنی بیشتر اون، هیچ وقت نمیشد حرفی یا روی لب نگه داشت. اول بهم به گفت یارو از هاروارد اومده سراغش، احتمالا باید سال اولی باشه. ولی خوب اینو نگفت. یارو انگاری خیلی به همش ریخته. صبح و شب بهش زنگ می زده. صبح و شب مدام؟ وای داشتم خفه می شدم. بعدش از یاروی دیگهی گفت که تو وست پوینت دانشوی افسری سری بود. میگفت این بابا هم خودش رو سرسلی جر داده. قلطه اضافی. بهش گفتم زیر ساعت هتل بالتیمور ساعت دو هم دیگر رو میبینیم و دیر نکنه چون فیلم ساعت دو نیم حتما شروع میشه. اونم که همیشه دیر میکرد. بعد قطع کردم. با اینکه دختر خوشگلی بود ولی همیشه میرفت رو اصابم. بعد از تنظیم قرارم با سالی از روی تخت بلند شدم و لباس پوشیدم و سکمو بستم. قبل از رفتن از پنجره نگاهی به بیرون انداختم ببینم آدمای دیشبی هنوز برنامه‌شون برقراری یا نه. که دیدم پرده‌ها رو کشیدن. صبح شده بود و یادشون افتاده بود بعد یه کمی حیا داشته باشن. بعد با آسانسور رفتم پایین و اتاقو پس دادم. موریسو ندیدم. البته همون بهتر که چشمم به آناخا نافتاد. تاکسی گرفتم ولی نمیدونستم کجا میخوام برم. جایی نداشتم. یک شنبه بود و تا چهارشنبه خونه نمیرفتم رفتم. نهایتش سه شنبه می رفتم. حالا اینکه برم هتل دیگه هم نداشتم و باز دوباره برنامه ی چیزی پیش می اومد. به راننده گفتم ببردم ایستگاه مرکزی راه آهن کنار هتل بالتیمور. با سلی همونجا قرار داشتم. گفتم میرم رو میذارم توی صندوق اماناتو بعد سوگو نمیذارم. بگین اگه گرستم بود تو تاکسی پولم رو چک کردم دقیق یادم نمیاد چقدر داشتم ولی میدونم خیلی نه بود تو دو هفته این چی پول خرچ کرده بودم خیلی خرچ کرده بودم پسر باید جورادم ویل خرجی بودم اگه هم خرج نمی کردم گم می کردم نصف مواقع یادم میره بقیه پولامو از رسطوران ها و کلوپایی که میرم بگیرم مامان بابام کفری میشن گناهی هم ندارم واقعا البته بگم پدرم ورزش خوبه نمیدارم چقدر درمیاره چون هیچ وقت سر مسئله مالی حرف نمیزنه ولی حدس میزنم خیلی خوب درمیاره. میاره یه شرکته خلاصه پول خوبی میگیره سرموی رو نمیشه برادوی هم دلیل دیگه یه مالی خوبشه تاعتراش همیشه شکست تجاری میخورن و مامانم از دستش خیلی کفری میشه مامانم از وقتی برادرم الا مورده زیاد حالش خوب نیست خیلی عصبی شده همین عصبی شدنش یکی دیگه از دلایلم برای پنان کردن اخراج شدنم از پنسی بوده ساکمو گذاشتم صندوق امانات بعد رفتم از این ساندیویش خوریای کوچولو و سگونه زدم صگونه مفصلی بود آب و بیکن و نیمرو و توست و قهوه معمولیش اینه که کمی آب پرتقال میزنم سنگین نمیخورم نه نه نه نه نه، شکم نیستم به خاطر همین پوست دوست خونم مثلا قرار بود از این رژیما بگیرم که آدم چاق چاغماغ میکنم ولی حال نکردم وقتی بیرون از خونم فقط ساندویج پنیر سوسیسی و شیر مالدار میخورم سنگین نیست ولی همین شیر مالدار ویتامین زیادی داره اچوی کالفید هولدن ویتامین کالفید داشتم نیم رو می که دوتا راه به چمدون به دست اومدن تو فکر کنم منتظر قطار دومی بودن که بعد عوض میکردن. کردن نشستن پشت کانتر کنار دستم نمیدونستن چمدوناشونو چیکار رو کنن منم بهشون کمک کردم چمدوناشون از این چمدونه ارزون بود از همون مدلهایی که کیفیت چرم و دوختش افتضاحه. میدونم اهمیتی نداره ولی خیلی بعدم میاد آدم چمدونه ارزون دستش بگیره گفتنش خوبیت نداره ولی من حتی از طرفمون تنفر میشم. تا گاهشون کنم و اون چمدون ها رو دستشون ببینم ازشون متنفر شدم. یه مدتی تو مدرسه هیلز با یکی به اسم دیکس لگلی هماتاق بودم که چمدون ارزون قیمتی داشت. همیشه خودام عوض اینکه بذارتشون بالای کمد میذاشتشون زیر تخته که من بوده یکی اونا رو کنار چمدون ای من ببینه. همین خیلی خیلی نااراحتم میکرد و. مدام دلم میخواست چم بدونه خودم رو دور بندازم یا اینکه باهاش باش تاخ بزنم ماله من برند بود و از چرم احلا و اینجور چیزا بود و قیمت چند بالا بود آخرش داستان این شد که منم عوض بالای کموت گذاشتمشون زیر تخت و دیگه این دوستمون دوچار ضعف روحی نشه نکبت <تصفيق> ولی آقا چیکار کرد؟ فرداش چم خودشو خودش رو گذاشت بالای کموت <تصفيق> باور کن آدم ای بود مدام مشغول تیکه انداختم بود نمونش همی چمه دونا مدام میگفت چقدر نوع و برجوه, برجوه کلمه محبوبش بود حتی میگفت خودکار فشاری من برجوه ایه. همیشه خودکارام قرض میگرف ولی واقعا برجوه بود فقط دو ماه هم اتاقی موندیم هر دو تغازه تغییر جا دادیم مزخرش اینجاست که وقتی رفت دلم برش تنگ شد آدم بامزهی بود با هم خیلی خوش مگذر تعجب نمیکنم اون هم دلش برام تنگ شده باشه. میدونستم وقتی می گفت وسایلم شوخی میکرد و برام مهم نبود تازه خنده دارم بود ولی یه کمی که گذشت دیدم نه همچین هم شوخی نمیکنه مشکل اینجاست که سخته با کسی هم اتاق باشه که چمدونش از مال تو بدتره مخصوصا اگه مالتو تو العاده باشه و مالون در آخون. اولش به خودت میگه اگه طرفت آدم باهوش و شوخ طبیه پس براش مهم نیست که چمدونات ازش بهتره یا نه. ولی میبینی نه، اتفاقا مهمه. خیلی هم هست. دلیل اینکه با آدم گوهین لیتر هم اتاقی شدم همین بود. حداقل چمدونش به پای چمدونای من میرسید. حالا این راهبان نشسته بودن کنار دستم و با هم شروع کردیم گپ زدن. اون که کنار دستم بود از این سبدها که اعانه جمع کنه شب کریسمس میگیرن دستشون دستش بود همونا که گوشه خیابونو خیابونا جمع میشن مخصوصا جلوی فروشگاهی بزرگ یوح سبدش افتاد منم خم شدم برداشتمش پرسیدم که برنامهشون جمع کردن اعانه است گفت نه گفت که سبد تو چمدونش جا شده دستش گرفته یه لبخنده مهربونانه ای به لب داشت دماغش گنده بود و از این اینک های درشت فلزی داشت که زیاد قشنی نیستن ولی صورتش واقعا مهربون بود گفتم خیال کردم اومدین پول جمع کنین میتونم یه کمک کوچیکی بکنم همین واسه شروع میتونه خوب باشه گفت وای شما چقدر مهربونین اون یکی دوستشم نگام کرد داشت قهوه میخورد و کتاب جلد مشکی کوچیکی رو میخوند شبیه کتاب مقدس بود ولی کم حجمتر از اون دو سگونه نون تست و قهوه میخوردن صحنش افسردم میکرد متنفرم خودم از اینکه بشینم نیمرو و بیکن بخورم و یکی جلوم نون تست و قهوه بزنه به بدن به هم اجازه دادن ده دلار کمکشون کنم مدام میپرسیدن که مطمئنم برام زیاد نیست گفتم پول همرام هست ولی باور نمیکردن بالاخره گرفتن مدام تشکر میکردن. خجالت آور بود بحثو بردم سر مسائل کلی و ازشون پرسیدم دارن کجا میرن معلم مدرسه بودن از شیکاکو اومده بودن قرار بود برن خیابونه 168 یا 186 یادم نیست یکی از اون خیابونه بالای شهر کنار دستیم همونی که اینا که آهنی داشت انگلیسی درس میداد و دوستش تاریخ و سیاست امریکا بعد یه هایی جنسیم گول کرد حوض کردم از کنار دستیم نظرش رو درباره راهبه بودم بپرسم مخصوصا وقتی داره کتابهای خاصی برای زبان انگلیسی میخونه نه لزو من کتابهایی که توش چیزای تحریک کننده نوشته باشن همین کتابهایی که توش پر از آشق و محشوق باشم کافی بود که کرمن بگیره. مثل همین شخصیت یوستی تو رمان رومان بازگشت قوم توماس هاردی شخصیت خیلی جذابی نیست ولی اتا خودتو هم نمیتونی به این فکر نکنی که وقتی راه به این کتاب رو میخونه چه حالی پیدا میکنه البته چیزی نگفتم فقط گفتم انگلیسی درس مورد علاقمه. همونی که انگلیسی درس میداد گفت جدی میگین؟ چقدر خوشحالم؟ ها به امسال چی خوندین؟ خیلی دوست دارم بدونم امسال ما بیشتر رومتن آنگولا کار کردیم بیوولف و گرندل و پادشاه رندل و اینا ولی واسه نمره اضافه هر از گایی میگفتن کتابای دیگه هم بخونیم کتاب بازگشت قوم توماس هاردی هم خوندم رومه و جولیت هم خوندم جولیوس وای رومه و جولیت چقدر خوبه خوشت نیمد اصلا شکل راه با حرف نمیزد <تصفيق> چطور خوشم نه خیلی هم خوشم یه چند تا چیزشو دوست نداشتم ولی خیلی مهم نبودن بیشترشو دوست داشتم چیشو خوشت نه یادته؟ راستش یه جورایی خجالت آوره که آدم با راهبهی درباره رمو حرف بزنه داستانشو میدونی دیگه؟ طرف راهبه بود اون وقت من نشسته بودم باش درباره چه چی چیزا حرف میزدم خیلی خوب از روما جولیت خوشم نایمد یعنی خوشم اومد نمیدونم چطوری بگم یه موقع خیلی لوس می شدن مرکوتیو که مرد دلم بیشتر سخته اون دوتا مشکل اینجاست که بعد اینکه مرکوتیو مرد دیگه خیلی از روما خوشم نمی اومد کی بود کشتش؟ فامیل جولیت بود؟ اسمش چی بود؟ تیبالت آه آره آره تیبالد همیشه اسم این بابا یادم میره گناه رومئو بود از همه بیشتر مرکوتیو رو دوست داشتم <تصفح> نمیدونم خانواده های و مونتاگو مشکلی نداشتن مخصوصا جولیت ولی مرکوتیو آدمیه که توضیح دادنش سخته هم باهوش بود هم سرگرمت میکرد مشکل من وقتیه که یکی تو داستان میمیره خیلی کفری میشم مخصوصا اگه طرفت خیلی باهوش باشه و سرگرمت کنه تازه اگه گناهی هم نداشته باشه که دیگه هیچی ولی گناه رمه گردن خودشون بود کدوم مدرسه درس میخونی؟ مطمئنم اینو پرسید که بحث رمه و ببنده بهش گفتم پنسی درس میخونم حسمشو شنیده بود میگفت مدرسه خیلی خوبیه گذاشتم به همین خیال خوش باشه بعد اون یکی که تاریخ درس میداد گفت بهتره که برن صورت حسابشونو برداشتم که حساب کنم ولی مگه گذاشتن همون که عینک داشت قبول نکرد حساب کنم. تو به اندازه کافی بزرگواری کردی، ممنون. پسر خیلی خیلی مهربونی هستی. آدم تو دلگرایی بود. کمی یاد مادر ارستمون رو میداختم. مخصوصا وقتی می, می خندید. همونیو میگم که تو قطار دیدمش. گفتن که از همصحبتی با هم خیلی لذت بردن گفتم منم همینطور واقعا هم خوشم اومده بود خیلی بهتر از تصورم بودن فقط یه چیز مدام ازیتم میکرد صحبت که میکردیم میترسیدم ازم بپرسن کاتولیکم یا نه کاتولیک جماعت دوست دارم بدونن طرفش کاتولیکه یا نه خیلی پیش اومده که ازم بپرسن مخصوصا به خاطر اسمم آخه اسمم ایرلندیه. خب اکثریت ایرلندیا کاتولیکن. راستش پدرم هم روزگاری کاتولیک بوده. ولی بعد از ازدواج با مادرم کلا بیخیال کاتولیک بودن شده بود. وقتی مدرسه واتومی رفتم یکی که به اسم لوئیس شینی میشناختم که اون هم کاتولیک بود. اولین کسی بود که اونجا باورش نشدم. دو تای رو صندلی درمونگاه نشسته بودیم. روز اول مدرسه بود و منتظر جواب پزشک بودیم. و راجع به تنیس حرف می زدیم مثل من عاشق تنیس بود گفت برای بازی های ملی هر تابستون می ره فورستیل گفتم منم اونجا می رم بعد درباره چند تا از تنیسورهای خوب حرف زدیم نسبت به سنش خیلی از تنیس در می آورد یه وسط حرفمون درباره تنیس پرسید که میدونم کلیسای کلیس های کاتولیک شهر کجاست. هست لحنه سوالش توری گود که میخواست بدون کاتولیکم یا نه در ج نه اینکه صویی چیزی داشته باشه نه؟ فقط میخواست بدونه از صحبتمون درباره تنیس خیلی خوشش اومده بود ولی دلش میخواست اینو بدونه که کاتولیکم یا نه همچین چیزای دیو هم میکنه نمیگم گندزد به صحبتمون چون نزد ولی کمکم به بهتر شدنش نکرد. به خاطر همین خوشحال شدم راه بااعم همچین سالی نپرسیدم. حرفها خراب نمیکرد ولی مطمئنا شکلشو تغییر میداد نمی خوم کاتولیکا سرزنشم کنن نه به هیچ وجه. منم اگه کاتولیک بودم رابط همینطوری می شدم. این موضوع شبیه جریان همون چمدونست که برای تعریف کردم. میخوام بگم که آدم و از بحث اصلی دور میکنه. همین وقتی پا شدم برن سوتی بدی دادم. اصلا حواسم نبود و موقعی خدافظی دود سیگار دستم و توی صورتشون خالی کردم، خیلی معذرت خواهی کردم. اونا هم خیلی معدب و مهربون بودن که چیزی نگفتن ولی من کلی بابت کار زایهی که کردم خجالت کشیدم بعد که رفتن دلم سوخت که فقط ده دلار بهشون داده بودم ولی خب با سالی هیزم قرار داشتم و بعد پول بلیت میلیت میدادم ولی خب دلم سوخت دیگه پول لعنت بهش همیشه حال آدمو میگیره این پول